دوستان گلم به کلاسی دیگری از دانشکدی کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. ضمن بررسی کتاب مقدس به رسالات پتروس در عهد جادید رسیدیم. معنی تبدیل شدن چیه؟ چطور میتونیم اونو تشخیص بدیم؟ در درس امروز معلممون مراحل تبدیل رو از زندگی شمعون پتروس که یکی از شخصیت های پویای گل کتاب مقدس هست شرح میده برامون. سه مرحله کاملا متمایز در زندگی پتروس در عهد جدید وجود داره و معلممون هرسی اونها رو در درس امروز باز خواهد کرد. با هم به درس امروز گوش میکنیم. وقتی که رسالات پتروس رو در انتهای عهد جدید می‌خونید، با پتروس متفاوتی از آنچه که در کتاب اعمال ملاقات کردید مواجه میشید. پتروسی که در کتاب اعمال دیدید، هم از پتروسی که در اناجیل دیده بودید متفاوت بود. در عهد جدید سه پتروس متفاوت و متمایز از هم میبینید. اما همه یک نفر هستند. پتروس اول که در عهد جدید میبینید در اناجیل هست. نام او اون هست. وقتی برادر پتروس او رو به ایسا معرفی کرد، ایسا گفت من برای تو لغبی خواهم داد. من تو رو کیفا صدا خواهم کرد. معنی کیفا صخره یا سنگ هست و اشاره به کسی هست که مقاوم می باشد. اگر تنها کلمه ای که می تونستید شخصیت شمعون رو در اون دوره با اون بیان کنید اون کلمه میتونست متزلزل باشه. اما ایسا میگه من تو رو مقاوم خواهم خواند. عیسی سه سالو رو سخره صدا میکنه بعد همونطور که در کتاب اعمال می بینیم شمعون واقعا تبدیل به صخره شده. پتروسی که در اناجیل ملاقات کردیم به نوعی شیزوفرنی روحانی داره. او بالا و پایین میشه خاموش و روشن میشه، سرد و گرم میشه و هیچ ثباتی نداره وقتی که ما با پتروس در انجیل مواجه میشیم میتونیم خودمون رو با او یکی ببینیم چون که او هم انسان هست به خاطر انسانیت خودمون خیلی راحت میتونیم خودمون رو مثل این پتروس ببینیم پتروس همیشه به خداوند میگه که چیکار کنه گفتگوهای جذابی بین عیسی و پتروس در سراسر هر چهار انجیل وجود داره در گفتگوی بین عیسی و پتروس در انجیل ملاحظه کنید کی ایسا او رو شمعون صدا میکنه و کی پتروس اساس این هست که هر وقت پتروس کار اشتباهی میکنه ایسا او رو شمعون صدا میکنه و وقتی کار درستی میکنه ایسا او رو پتروس خطاب میکنه ایسا به پتروس صدا کردن و ادامه میده تا اینکه پتروس رو تصدیق کنه به عبارت دیگه ایسا اونقدر شمعون متزلزل رو سخره صدا میکنه تا اینکه این مرد که سراسر زندگیش متزلزل بوده تبدیل به صخره و رهبری بزرگ در کلیسای مسیح بشه وقتی گفتگوهای ایسا رو با پتروس بررسی میکنید با چیزی هیجان و پویا مواجه میشید ما میتونیم پتروس متزلزل رو با گفتگوهای مداوم او با عیسی بهتر بشناسیم و چیزهای زیادی از او یاد بگیریم اولین باری که عیسی پتروس رو ملاقات میکنه مشخص هست که عیسی میخواد این مرد رو که حتی نمیتونه ماهی بگیره با خودش ببره و او رو تبدیل به مردی بکنه که انسان ها رو سید بکنه حالا شما چطور میتونید مردی رو که حتی نمیتونه ماهی بگیره ببرید و او رو در عرض سه سال چنان تربیت کنید که تبدیل به کسی بشه که بتونه انسانها ها رو سید کنه ما جواب این سوال رو در لقا باب پنج میبینیم در گفتگو بین عیسی و پتروس وقتی عیسی قایق پتروس رو پر از ماهی کرد بعد از اون به او گفت ماهی سید نکن انسانها ها رو کن از بسیاری جهات عیسی در اون گفتگو به پتروس گفت اگر تو سیاد انسان ها بشی، باید این رو به خاطر بسپاری که تو سیاد نیستی. من سیادم و من با تو هستم. بعد ایسا به پتروس گفت تو نمیتونی ماهی بگیری، اما من میتونم و من با تو هستم. من در قایق تو هستم پتروس. تو حتی نمیخوای ماهی یا انسان ها رو صید کنی، اما وقتی من با تو در قایق هستم، خواسته یه تو عوض خواهد شد چون تو چیزی رو خواهی خواست که من میخوام. دلیلی که ایسا باید این اسرار روحانی خدمت رو به پتروس تعلیم میداد این بود که روزی پتروس بتونه به گذشته و به کار و زندگیش نگاه کنه و بگه من نکردم بلکه او کرد چون او با من بود یکی از متنهای جذاب در گفتگوهای بین ایسا و پتروس در لوقا بابه 22 آیه 31 تا 34 هست من به این گفتگو بسیرت نام دادم ایسا در بالاخانه با رسولان هست و چیز ای به پتروس میگه. در اون مکالمه عیسی او رو شمعون خطاب میکنه و میگه ای شمعون ای شمعون توجه کن شیطان خاص مثل دهقانی که گندم رو از کاه جدا میکند همه شما رو بیازماید اما من برای تو دعا کردم که ایمانت از بین نرود و وقتی که برگشتی باید برادرانت رو استوار گردانی شمعون جواب داده خداوند من حاضرم با تو به زندان بیفتم و با تو بمیرم عیسی فرموده پتروس آگاه باش امروز قبل از اینکه خروس بانگ این بزند تو سه بار خواهی گفت که مرا نمی شناسی. به خاطر کلمه تبدیل یا برگشت، این قسمت جالبی از گفتگوی بین عیسی و پتروس هست. منظور عیسی از گفتن این کلمه چی بود؟ ای شمعون اون، ای شمعون اون توجه کن، شیطان خواست مثل دهقانی که گندم را از کاه جدا میکند، کند، همه شما را بیازماید. اما من برای تو دعا کردم که ایمانت از بین نرود و وقتی برگشتی، باید برادرانت را استوار گردانی این دو سوال در ذهن من پیش میاره. تبدیل شدن چی هست و سوال دوم پتروس کی تبدیل شد یا برگشت؟ معزهی که پتروس در باپای نخست کتاب اعمال کرد و مردم را به توبه و برگشت تشویق نمود، تبدیل شدن و برگشتن چه معنی داره؟ عملا معنی کلمه زیر و رو شدن هست. وقتی وارد بحث الهیاتی اون کلمه بشید، به چنین نتیجه ای میرسید. شما تولد وارونه پیدا میکنید. بنابراین وقتی تبدیل میشید به طرف درست برمیگردید. این کلمه ی زیبا به معنی بازگشت کامل هست. پتروس کیچن چنین بازگشتی رو تجربه کرد؟ پتروس سه سال تمام با عیسی بوده و حالا پتروس در بالاخانه هست و در مراسم جشن فارغ و تحصیلی سه سال دانشکده شرکت کرده و در این موقع هست که عیسی به او میگه وقتی برگشتی برادرانت رو استوار بکن. تبدیل یا برگشتن برای هر کسی متفاوت هست. برای بعضی ها در عرض یک دقیقه هست و برای بعضی سالها طول میکشه. پروفسور دیک نویسنده دانشکده که کتاب و مقدس در حال تحصیل بین دانشگاه و کالج بود و با یک شبان ارشد کار میکرد و یک سوال در ذهنش داشت. او سوالاتش بیشتر از جوابهاش بود. شبانی که دیک را تعلیم میداد، هر سشنبه بعد از ظهر به مدت چهار ساعت اول را به زبان یونانی به او درس میداد. وقتی ما رساله اول یوحنا رو بررسی بکنیم، خواهیم فهمید که چرا اونها این رساله رو مطالعه می می‌کردند. رساله اول یوحنا رساله اطمینان هست بعد از اینکه اونها کتاب مقدس رو یک سال تمام مطالعه کردند، پروفسور دیک تمام سوالاتش رو پرسیده بود. در پایان یک سالی که با هم داشتن، او کتابی رو که برای شبان دیک نوشته بود به او داد و با دستخط خودش در صفحه اول اون نوشته بود ای دیک، ای دیک توجه کن شیطان خواست مثل دهقانی که گندم را از کاه جدا می کند همه شما را بیازماید اما من برای تو دعا کردم که ایمانت از بین نرود و وقتی برگشتی باید برادرانت را استوار گردانی او زیر کلمه دعا کرده ام با قلم قرمز خط کشیده بود اون کلمات در قلب او نفوذ کرد او نوشته بود وقتی برگشتی او یک سال تمام با این مرد کار کرده بود و معلوم بود که در اون لحظه هنوز پروفسور تبدیل نشده بود بلکه سالها بعد از این برگشتن رو تجربه کرده بود ببینید این امکان هست که در کلیسا حضور داشته باشید حتی رهبری در کلیسا باشید و حتی شبان کلیسایی باشید و حقیقتا تبدیل نشده باشید من نمیدونم آیا شما تبدیل شدید یا نه فکر میکنید تبدیل چیه تبدیل ملحق شدن به یک کلیسا نیست تبدیل یک گواهینامه پایان تحصیلات نیست تبدیل پیشرفت در یک حرکت بشارتی و یا تعمید گرفتن و یا چیز دیگری نیست تبدیل تجربه که از درون به بیرون صورت می گیره تبدیل تجربه که زندگی شما را متحول می‌کند. آیا چنین این تبدیلی را تجربه کردی؟ پتروس کی تبدیل رو تجربه کرد؟ اگر شما زندگی پتروس و زندگی موسا رو مقایسه کنید گاههایی از تبدیل رو به دست خواهید آورد من بهتون گفتم که موسا سه درس رو یاد گرفت او فهمید که هیچ کس نیست و یاد گرفت که با کسی که میدونه که هیچ کس نیست خدا میتونه چیکار بکنه یاد گرفتن هر کدوم از این درس ها برای موسا چهل سال طول کشید پتروس این درس رو یاد گرفت که هیچ کس نیست چقدر طول کشید که پتروس بفهمه که هیچ کس نیست وقتی سه پتررس رو مطالعه می‌کنید میتونم این رو بهتون بگم از لحظه ای که پتروس عیسی را ملاقات کرد و ایسا او را صخر نامید تا زمانی که او سه بار عیسی را انکار کرد و بعد به تاریکی رفت و به تلخی گریست، پتروس یاد گرفت که هیچ کس نیست. ایسا در بالاخانه به او گفت: قبل از اینکه اون شب به پایان برسه، قبل از اینکه خروس سه بار بانک بزنه، پتروس سه بار عیسی را انکار خواهد کرد. همونطور که خداوند پیشبینی کرده بود، این اتفاق افتاد. لوقا از لحاظ تاثیر انسانی صحبت می‌کنه. میگه در اون واقعه که پتروس سه بار خداوند رو انکار میکنه بعد از اون خروس سه بار بانگ میزنه و اونها عیسی را از تالار دادگاه بیرون میارن عیسی به شدت تازیانه خورده و تاجی از خار بر روی سرش گذاشتن تصور کنید که او چه قیافه‌ای داشته لغاب ما میگه که چشمان عیسی با چشمان پتروس تلاقی کرد و در همون لحظه خروس بانگ زد فکر میکنید پتروس چه احساسی داشته بلافاصله پتروس به تاریکی پناه برد و به سختی گریست حالا من به میگم که وقتی پتروس به تاریکی رفت و در اونجا گریست به این دلیل بود که او یاد گرفت که بدون عیسی او هیچ کس نبود اولین خوشاب حال ها این بود خوشاب حال مسکینان در رو معنی این چیه؟ من معتقدم که معنیش اینه که خوشاب حال کسانی که میدانن هیچ کس نیستن و این رو میفهمند که بدون خدا اونها هیچ کس نیستن من فکر میکنم وقتی که پتروس به تاریکی رفت و ت او این درس رو یاد گرفت وقتی ما میبینیم که پتروس در تاریکی گریه میکنه بیان زنده ای از آن از آنچه که عیسی گفت خوشحبه حال مسکینانه در روح حالا شما تجسم کنید که هر بار که پتروس صدای بانک خروس رو میشنیده چی توی دلش میگذشته اون ناحیه از دنیا در اون زمان تقریبا هر خانواده ای مرغ و خروس نگهداری میکردن احتمالا باید هر جا که پتروس میرفته بانک خروس رو اونجا میشنیده و هر روز و هر لحظه ای که او بانک خروس رو میشنیده انکار مسیح رو دوباره به خاطر میآورد بعد از قیام عیسی مسیح عیسی به برادر زمینیش یعقوب ظاهر شد ما در بررسی رساله یعقوب گفتیم که چون عیسی بعد از قیامش بر یعقوب ظاهر شد یعقوب ایمان آورد و تبدیل شد خداوند همینطور به دوازده شاگرد هم ظاهر شد او به 500 نفر از برادران ظاهر شد و به پتروس هم ظاهر شد ما در باب 21 ام انجیل یوحنا ظهور بعد از قیام عیسا رو بر پتروس میخونیم این زمانی بود که عیسی پرسید: پتروس آیا مرا دوست داری؟ پتروس آیا مرا بیشتر از دیگران دوست داری؟ هفت نفر از کسانی که در بالاخانه حضور داشتند، وقتی که پتروس لاف میزد که اگر همه تو را انکار کنند من با تو خواهم بود، اون روز هم در اونجا حضور داشتند که عیسی او پرسید: آیا تو منو بیشتر از بقیه دوست داری؟ عیسی کلمه یونانی آگاپه رو به کار برد که به معنی عشق و سرسپردگی کامل هست. وقتی پتروس به عیسی پاسخ داد: پتروس از کلمه یونانی فیلئو استفاده کرد که منظورش این بود که تو میدونی که محبت من به تو فقط در حد دوستیه. دیگه پتروس لاف نمیزد چون دیگه مردی بود که شکسته شده بود. بعد از اینکه پتروس اعلام میکنه که محبت او فقط محبت فیلئو هست، خداوند این چیز خارق رو به او میگه. به گوسفندان من غذا بده. چیزی که عیسی داره میگه یک چنین چیزیه. من کسی مانند تو میخوام که بدون شکست چه مفهومی داره می خوام کسی که شکست رو تجربه کرده به گوسفندان من غذا بده من نمی خوام ایده ایدالیست درخواست های نامعقولی از گوسفندان من داشته باشن تو به گوسفندان من غذا بده وقتی پتروس به شکست خود اقرار کرد خداوند میگه تو به گوسفندان من غذا بده پتروس من می خوام کسی مثل تو به گوسفندانم غذا بده بعد خداوند برای دومین بار از او پرسید پتروس آیا مرا دوست داری نه از بقیه بلکه آیا منو دوست داری؟ باز هم عیسی از کلمه آگاپه استفاده کرد و پتروس جواب داد تو جوابش رو میدونی خداوندم تو میدونی که محبت من به تو فقط محبت فیل او هست خداوند گفت گوسفندان منو شبانی کن پتروس کلمه یونانی برای شبانی به معنی مشورت دادن هست از گوسفندان من مراقبت کن و مشفرت بده و باز هم عیسی میگه من میخوام کسی به گوسفندان من مشفرت بده که شکست رو تجربه کرده باشه. برای بار سوم خداوند از پتروس میپرسه که آیا او رو دوست داره یا نه این بار خداوند از کلمه فیله او استفاده میکنه به عبارت دیگه در سومین بار عیسی داشت میپرسید پتروس آیا واقعا منو مثل یک دوست دوست داری و در اون لحظه پتروس با دلی شکسته گفت آه خداوندم. حداقل میدانی که من تو رو مثل یک دوست دوست دارم باز هم خداوند به پتروس گفت به گوسفندانم بده پتروس من معتقدم این زمانی بود که پتروس یاد گرفت که او کسی هست. وقتی عیسی بر پتروس ظاهر شد و او را متقاعد کرد که حتی علاوه شکستش، او شایسته شبانی و قضا دادن به گوسفندان خداوند هست، پتروس یاد گرفت که او کسی هست. در واقع در اون مصاحب من فکر می کنم خداوند به پتروس می گفت چون تو شکست خوردی شایسته هستی که به گوسفندان من قضا بدی. پس پتروس بعد از اینکه خداوند بعد از قیامش بر او ظاهر شد، فهمید که کسی هست. بعد در روز پنتیکاس وقتی قوت پنتیکاس او قرار گرفت من معتقدم که پتروس و تمام دنیا درس سومی رو که موسی یاد گرفته بود یاد گرفتند خدا میتونه با کسی که میدونه کسی نیست چیکار کار بکنه چرا روح القدس توسط این مرد پتروس در روز پنتیکاس توضیح شد؟ چرا روح القدس توسط یوحنا یعقوب آندریاس و یا کس دیگه ای بر مردم قرار نگرفت؟ من معتقدم که روح القدس توسط پتروس کار کرد چون پتروس این چهار رمز روحانی رو بهتر از هر کس دیگری که در روز پنتیکاس در اونجا حضور داشت میدونست دونست. من نیستم بلکه او هست و من در او هستم و او در من من نمیتونم اما او میتونه و من در او هستم و او در من این چیزی نیست که من میخوام چیزیه که او میخواد و من در او هستم و او در من و در روز پنتیکاس من معتقدم پتروس درس سوم رو یاد گرفت خدا با کسی که فهمیده هیچ کس نیست چیکار میتونه بکنه پس پتروس کی تبدیل شد بعضی ها معتقدن وقتی پتروس به تاریکی رفت و به تلخی گریز تبدیل یافت و بعضی ها معتقدن پتروس در پنتیکاس تبدیل شد شما چی فکر می برای خودتون فکر کنید عیسی دوست داشت این سوال رو بپرسه شما چی فکر می من هم به این اتفاق خواهم کرد شما چی فکر می شما فکر می کنید پیترس کی تبدیل یافت تبدیل چیه و از همه مهمتر آیا خود شما تبدیل یافتید وقتی گفتگوی بین پتروس و عیسی را ملاحظه می‌کنید، میتونید به این نتیجه برسید که تجربه تبدیل در زندگی پتروس همواره ادامه داشته. وقتی اناجيل رو می‌خونید و پتروس را در انجیل ها ملاقات می‌کنید و بعد وقتی که کتاب اعمال رو می‌خونید، پتروس متفاوتی رو می‌بینید. وقتی که اناجيل رو می‌خونید و پتروس رو در انجیل ها ملاقات می‌کنید و بعد وقتی که کتاب اعمال رو می‌خونید و پتروس متفاوتی رو می‌بینید، از خودتون بپرسید ایسا سعی داره در رابطه شون به پتروس چه چیزی رو انتقال بده برای مثال وقتی عیسی پاهای شاگردان رو در اتاق بالا میشست یادتونه که وقتی خواست پای پتروس رو به بشوره چه اتفاقی افتاد پتروس پرسید آیا می خواهی پای منو بشوری اگرچه جواب اون سوال روشن بود خداوند با صبوری به پتروس گفت تو اکنون نمیفهمی من چه کنم، ولی بعداً خواهی فهمید سخنان عیسی به بسیار عمیق بود چیزهای زیادی در زندگی پتروس در این مرحله در جریان بود. پتروس احتمالاً ترسو بود. قبل از اینکه اون شب به پایان برسه، پتروس سه بار خداوند را انکار کرد. این نشون میده که چه قوقای روحانی در قلب پتروس وجود داشته. عیسی به او گفت: تو نمیفهمی. من در زندگی تو الان چیکار میکنم، اما بعدها خواهی فهمید. نمیدونم آیا این کلامی از سوی خدا برای شما هم هست یا نه. غالبا خدا در زندگی فرزندانش و زندگی ما کارهایی میکنه که ما نمیفهمیم چرا و خدا داره در زندگی ما چیکار میکنه شاید بعدها بفهمیم که خدا چرا اون کارها رو در زندگی ما کرده بعد از اینکه خداوند این سخنان عمیق رو به پتروس گفت پتروس جواب داد هرگز نمیگذارم پاهای مرا بشویی عیسی به او گفت اگر تو را تو در من سهمی نخواهی داشت شمعون پتروس گفت پس ای خداوند نه تنها پاهای مرا بلکه دستها و سر مرا نیز بشوی ایسا گفت کسی که قص کرده احتیاجی به شستشو ندارد به جز شستن پاهایش. او از سر تا پا تمیز است و شما پاک هستید ولی نه همه. بر اساس اون استعاره بعضی ها میگن احتمالا پتروس قبلا تبدیل یافته بود. او قبلا دوش گرفته بود. پس تبدیل قبلا باید صورت گرفته باشه. شما چی فکر میکنید؟ پتروس کی تبدیل شد؟ چیزی که مسلمه ما سه پتروس متفاوت در عهد جدید داریم. زندگی روحانی پتروس در اناجیل پر از پستی و بلندی هست اما بعد پتروسی را که در کتاب اعمال ملاقات می بسیار متفاوت است. این پتروس بالا و پایین و خاموش و روشن و سرد و گرم نداره در کتاب اعمال زندگی پتروس در رو تپه نیست زندگی روحانی پتروس در کتاب اعمال چیزیه که بعضیها به اون زندگی در دشت مرتفع گفتن این پتروس بسیار استوار هست او متزلزل نمیشه بعد از پنتیکاس به نظر نمیاد که پایین اومده باشه این به خاطر پنتیکاس بود پتروس کتاب اعمال پتروسی هست که در سرازیری خیابان به پایین میاد و اگر سایه او بر بیماران بیفته اونها شفا پیدا میکنن این پتروس کتاب اعمال هست من همه اینها رو به این دلیل گفتم که وقتی رسالات پتروس رو در آخر عهد جدید میخونید با پتروس دیگری روبرو میشید وقتی به های او میرسیم این خیلی مهمه که با این پتروس آشنا بشید. اگر ما پتروسی که این نامه ها رو نوشته بشناسیم، میتونیم از حقیقتی که خدا در این رسالات برای ما داره دیدگاهی رفی پیدا کنیم. این پتروس پیر هست. مدتها قبل پتروس فهمیده بود که هیچ کس نیست و فهمیده بود که خدا با کسی که میدونه هیچ کس نیست چی میتونه بکنه و حالا او شبان پیری هست که داره این نامه ها رو می نویسه. وقتی پتروس این نامه ها رو می نویسه، او هم مانند یعقوب و نویسنده ابرانیان خطاب به پیروان یهودی مسیح می نویسه که در سراسر آسیای صغیر همان ترکیه امروزی پراکنده شدند. اونها به خاطر سختی و جفا پراکنده شده بودند. پتروس در روم هست. وقتی پتروس به بابل اشاره می کنه، منظورش واقعا روم هست. پتروس می دونه که جفا در روم بدتر و بدتر میشه. و این عامل پراکندگی یهودیان در سراسر اون منطقه هست. هدف اصلی پتروس از نوشتن این بود. به عنوان یک شبانو میخواست به کسانی که در جفا بودن تسلی بده و به اونها مشورت بده. به نظر میرسه که هدف کلی در هر دوی این نامه همین بوده. پتروس چهارده بار در نامه اولش به جفاها اشاره میکنه. وقتی این نامه های پتروس رو میخونید، میخوام که یک دیدگاه دیگر رو به شما بدم. مردی آمی بود. او نمیتونست بنویسه و بخونه به این دلیلی که در انتهای این نامه ها به ما میگه این نامه مختصر را با کمک سیلوانس که او را یک برادر وفادار میدانم نوشتم تا شما را تشویق کنم و به آن فیض راستین خدا که در آن استوار هستید شهادت بدهم او نمیتونست بخونه یا بنویسه اگر شما چیزی نوشته باشید میدونید که وقتی مینویسید سعی میکنید با استدلال بنویسید شما پاراگرافی رو مینویسید و بعد به آن آنچه نگاه میکنید و بر اساس آنچه که نوشته اید پاراگراف بعدی رو اضافه میکنید شما اون رو میخونید و پاراگراف دیگری اضافه میکنید مانند نویسنده ابرانیان یا پولس رسول وقتی که رومیان رو می نوشت شما سعی میکنید با استدلال بحثی سیستماتیک رو در نوشتن دنبال کنید پتروس نمیتونست این کار رو بکنه وقتی نامه‌های پتروس رو میخونید این حقیقت رو به یاد داشته باشید که پتروس قادر به نوشتن نبوده اینجا شما با شبان پیری روبرو هستید شاید با بزرگترین شبانی که تا زندگی کرده از بسیاری لحاظ پتروس یکی از باسوادترین و تحصیل کرده ترین مردانی بود که تا زندگی کرده چون که او سه سال با ایسای مسیح زندگی کرده بود کجا میتونست بهتر از این تحصیل بکنه؟ اگرچه پتروس سواد نداره یا اهل کتاب نیست اما مردی آموزش دیده است. نکات قوت او در روابطش با خدا و با رو ملاحظه کنید. پرسون اون را رو غذا میده که عیسای های مسیح رو به چالش کشیده بود که به اون غذا بده همون گلهی رو شبانی میکرد که مسیح رو به چالش کشیده بود که شبانی کنه این شبان پیر رو تصور کنید که با برادر وفادارش سیلاس نشسته دستهاشو به سینه زده و از اعماق قلبش این حقایق عمیق رو با مادر میون میذاره که امروزه در نامه هاش وقتی نامه های پتروس رو میخونید دنبال بحثی سیستماتیک نگردید دنبال باله گنجینه های امیق و کاربردی از حقیقتی باشید که به واقعیت شناخت خدا و عیسی مسیح میکنه پتروس گاهی از موضوعی به موضوع دیگه می پره و گاهی حقایق روحانی را رو با ما در میون میذاره که درکش سخته. در پایان دومین نامهش پتروس میگه او در تمام نامه های خود درباره این چیزها می نویسد. در این نامه ها گاهی مطالب دشواری هست که مردمان جاهل و ناپایدار از آنها تفسیر غلط میکنه. همونطور که با قسمت های دیگر کتاب مقدس هم رفتار می‌کنند. و از این را حلاکت را نصیب خود می سازن. من شنیدم که محققی می گفت وقتی پتروس و پولس در آسمان ملاقات کنند، پولس خواهد خواست که با پتروس صحبت کنه چون چیزهایی در نامه های پتروس هم بود که درکش بسیار سخت بود. مثلا در اول پتروس سه پتروس درباره باره یه عیسی برای ارواح محبوس صحبت میکنه مارتین لوتر گفته هیچکس نمیدونه منظور او از این متن چیه بعد از نوشتن این مشکل پتروس ناگهان موضوع رو عوض میکنه و از نوح و طوفان صحبت میکنه این او رو وادار میکنه که به تعمید فکر کنه پس در مورد تعمید صحبت میکنه اما یادتون باشه پتروس نمی نویسه. او فقط قلبش رو با ما در میون میذاره وقتی پتروس با ما صحبت میکنه دنبال این بگردید موضوعی هست که در سراسر نامه های او جریان داره و اون موضوع شناخت حقیقی خدا توسط عیسی مسیحه. آیا تا حالا پیرمرد خدا شناسی رو دیدید که سالهای سال خدا شناس بوده و تنها چیزی که می با شما صحبت کنه شناخت خدا بوده؟ پیرمردی مثل او در کلیسای خود ما هست. هر وقت که با هم وقت می یا با هم بحث می او موضوع بحث رو به یک چیز میکشه و می اما آیا خدا رو میشناسید؟ آیا عیسی را میشناسید؟ بنابه گفته او اگر شما خدا را بشناسید این شناخت تمام مشکلات شما را حل میکنه او همیشه از شناخت خدا با ما حرف میزنه و میپرسه اما آیا واقعا خدا را میشناسید آیا با او راه میرید آیا هر روز با او راه میرید او مانند پتروسی هست که در رسالات پتروس میبینید پتروس مشخص میکنه که ما باید با خدا و با همدیگر ارتباط داشته باشیم با الهام روح القدس به علاوه موضوع شناخت خدا توسط عیسی مسیح موضوعات دیگری هم در این رسالات وجود دارند که ما میتونیم اونها رو با کلمات کلیدی که تکرار شدهاند پیدا کنیم. مثلا کلمه رنج چهارده بار در رساله اول پتروس تکرار شده و به کلمه فیض به کررات اشاره شده چون فیض نیروی محرکه ای هست که ما رو در رابطه من با خدا به پیش میبره. کلمه زنده کلمه ای هست که پتروس دوست داره زیاد استفاده کنه. پتروس به خدای زنده علاقمند هست به مسیح زنده به کلام زنده خدا و به امید زنده ای ایمانداران پولس رسول ایمان است یوحنا رسول محبت هست اما پتروس رسول امید هست پتروس به کسانی که در رنج هستند امید میده کلمه دیگری که پتروس مکررا استفاده میکنه کلمه ارزشمند هست هر چیزی در نظر پتروس ارزشمنده پتروس به هفت چیز ارزشمند در نامه هاش اشاره میکنه وقتی این دو نامه رو میخونید ملاحظه کنید که آیا میتونید هفت چیزی رو که برای پتروس ارزشمند هستن مشخص کنی؟ پتروسی که ما در اناجیل ملاقات کردیم، ماهیگیری خشن و مردی بددهن بوده که با ایسا ملاقات کرد. ارزشمند کلمه ای نبود که او در اون دوره از زندگیش به کار ببره. کلمه ارزشمند ای کلمه ایه که یک پیرمرد به کار میبره. پتروسی که در این دونامه ملاقات میکنید، پتروس پیر و شبانی هست که خدا براش ارزشمنده کلام خدا برای ارزشمنده و نجات برای ارزشمنده آیا در ایمانتون بالغ شدی؟ آیا فهمیدید که جدا از خدا شما هیچ کس نیستی؟ این سری روحانی هست که همه ما باید یاد بگیریم. بعد به خدا اعتراف کنید که بدون او هیچ کس نیستید و جدای از اون نمیتونید هیچ کاری بکنید. بعد از اون میتونید مانند پتروس یاد بگیرید که خدا توسط کسی که میدونه هیچ کس نیست چی کار میتونه بکنه. آیا رابطه شما با خدا ارزشمنده؟ این دو نامه کوچک رو بخونید و از خدا بخواهید که با شما حرف بزنه. وزیزون همه چیز در زندگی پتروس از راه رفتن کوتاه اون بر آب تا این کار عیسی او رو به شکل مرد خدای پویا درآورد. همونطور که امروز شنیدیم، باید بدونیم که تا زمانی که خدا ما رو تبدیل به کسی میکنه، ما هیچ کس نیستیم. و بعد خدا میتونه به دنیا نشون بده قادر با کسی که یاد گرفته هیچکس نیست چه کارها بکنه متشکریم که امروز هم با ما همراه بودید همیشه مطالعه کلام خدا به همراه شما مایه مسرت ما بوده امیدواریم تا برنامه بعدی زندگی و شهادت پتروس شما را در زندگی ایمانیتون و پیروی از خداوندمون عیسی مسیح تشویق کنه